که چرا برخلاف زیارت امه که با سلام شروع میشه زیارت حضرت زهرا با خطاب یا ممتحنه شروع میشه کیون زیارت رو ابتدا میکنه یا ممتحنته چون اون صفت مهم و تو می که مطرحه اون امتحانیه که حضرت درگیری شد امتحان سی جوره یه امتحان معلم نسبت به بچه ها داره میخواد به سنجی ببینی یاد گرفتن یا نه چون علم نداره که اینها چقدر بلدم یه امتحان امتحان خداست نسبت به انسان های غیر معصوم خداوند علم داره که اینها کی هنود چه خواهند کرد هم نسبت به قبل بسیره هم به حال هم به آینده چه به ظاهرشون چه به کارهای باطنیشون در مورد کارهای آیندهشون هنوز پیک نکرده خدا میدونه که این چه پیک خواهد کرد و چه عمل میکنه امتحان به مثل امتحان مثلا شاگرد و معلم نیست امتحان بر انسانهای خیلی معصوم به خاطر چکشکاریشونه میخواد آمادشون کنه برای جایگاه های بالاتر امتحان نسبت به معصوم این معنای خاصی داره که اینشالله خدا توفیق بده بیانی بده م بشه بعد فرمودید که حضرت امتحان شدن این منظور هم امتحانی که منجر به شهادتشون شد بوده یا سایر امتحانات اون حرکت رو که بانان امر با انجام داد واجیبه بر همه انسان ها که از امام معصوم محافظت کنن وقتی اونان عجیبه و اون حرکت را انجام دادن و حضرت رو میخواستن از خانه به زور بیرون ببرن ایشون مقاومت کرد و مقاومتش به شهادتش شد کار واجیبه بود انجام داد و امتحان چیزی دیگه ایه.